به مژگان سیاه کردی هزاران رخم در دینم بیا که از چشم بیمارت هزاران درد بر چینم الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مبا که بیاد تو بنشینم الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد مرا روزی مبا که بیاد تو بنشینم جهان پیرست و بیبنیاد از این فرهاد گش بریاد که کردف سون و نیرنگش ملول از جان شیرینم زتاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل بیاری باد شبیری نسیمی زن عرق چینم. جهان فانی و باغی فدای شاهد و ساغی که سلطانی عالم را توفیل عشق میبینم اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم سباه خیر زد بلبل کجایی ساغی آب برخی که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورال این اگر در وقت جان دادن تو با شمع بالینم حدیث آرزومندی که در این نام سب همان همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم